بسم الله الرحمن الرحیم و به این رسلین و انه خیر و ناصر و محین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد ارز کنم خدمتونی که دو سه جلسه ای هست که در ارتباط با نقش حدیث در تفسیر قرآن حرف می زدیم براتون در جلسات گذشته بیشتر سعی کردیم که جایگاه حدیث در مسیر تفسیر قرآن رو اگر بتونیم تدریم بکنیم و به یک رشته از مباحث اختصاص بدو کرد حرفای ما مثل این که اصلا حدیث چیه حدیث تفسیری چیه حدیث تفسیری در نگاه شیه چیه در نگاه اهل سنت چیه وقتی حجیت احادیس تفسیری چیه این مسائل رو گفتیم و حالا بالاخره علقی داریم که حدیث تفسیری فعلا در نگاه اهل سنت روایات پیامبر و روایات ائمه علیهم مستلامه و البته حدیث تفسیری در دیدگاه تفسیری اهل سنت عبارت از روایات پیامبر و آراء صحابه و تابعین که اینا معتقدن که اثر اثر تفسیری اینا مواردیه که تا حالا راجب این موضوع گفته شده اما آنچه که انتخاب کردیم برای امروز انشاء برای شما اینی که نقش حدیث در مسیر تفسیر قرآن حالا این یک کلمه مسیر که ما ندرشتیم میخواییم نقش حدیث رو به طور ددیر تر مثلا حدیث چه چیزهایی از قرآن رو تفسیر میکنه در مسیر تفسیر قرآن حدیث چه کارهایی میتونه بده؟ و عقیده دانشمندان حدیث در مسیر تفسیر قرآن خیلی کاری کنید یعنی از راه های می‌تونه در تفسیر آیات قرآن مؤثر باشه. شد کار ما چند که رو می‌میسیم بعد برش یه توضیحاتی شرب و بحث‌هایی مثلا توضیح لقات گاهی بعضی از روایت تفسیری لقاتی رو برای ما نقاطی رو برای ما توسید می دهد دو مجملات یه اگر ما فرض بکنیم که در برآن کردیم یک رشته احکام داریم یا آیات داریم که به صورت مجمل کلی مظهر به ما مادر می روایات می تونن روایات می‌تونن اون مجملات رو برای ما تبییل بکنیم یعنی بعضی از روایت تفسیلی در این محا صادر شده سفم تخصیص عمومات قرآن ما در عدادی این شاخه ای از همین باشه ولی در این حال این شهر رو که برش ما این عنوان بگذاریم که گاهی بعضی از احکام در قرآن کریم به شکل عام بیان میشن، اجماعی هم ندارن، اقامی هم ندارن ولی روایات، بعضی از روایات به اون عمومات تخصیص میزنن که حالا مثالاش انشانله بردونه نزدیک به تخصیص عمومات قرآنی تقیید اطلاقات قرآنی که ما یک داریم به نام مطلق و مقیل کار بعضی از مسائل در قرآنی به شکل مطلق بیان شده وقتی وارد حوزه رمایاتی میشینیم دیدیم یک میخوره به اون مطلق پنجم تفصیل قصص اندیا که یکی از مسائلی که در ما <صفح> رو قرآن کریم خیلی دیدنیه نیکی گاهی اوقات در قصه ها و سرگذشت ها حتی نام بعضی از افراد و اناسر داستان نامینه تو روایات میتونو معرفی بکنید مثلا این قانون اسمش دره بود اونجا اسمش ملکه صبا بود یا به هر ترتیبی قصص الویاب به وسیل روایت تفسیری می‌تونن تفسیر رو توسعه بیژا کنن از شوید، شیشمان، تعدیل متشابه یک سری از آیات قرآن رو دانشمندان و دوم قرآنی بزن آیات متشابه معرفه می‌کنن خب حقیقت متشابهات ما می‌تونی با روایات بفرمیم روایات تفسیری می‌تونن در تعدیل متشابهات و قرآنی به ما کمک هفتم تمیز ناسخ از منصور اگر ما فرض بخونیم که در بعضی از آیات قرآن حکمی نصد میشه و در بعضی آیات قرآن و تشریع حکمی تأکید میشه در نصبی ما تو بعضی از اومزاهایی تخنون ناسخی داریم منسوخی داریم اون علما بحث کردند علم میگن یکی از روش های تلیز ناسخ از منسوخ استفاده از روايات تفسیری یعنی روايات تفسیری میتونه ناسخ را از منسوخ برای ما روشن کنه هشتم تعیین مصادیق برخی از آیات گاهی بعض از آیات هست که یه مطلبی رو با یک عنوانی درمیان می‌گذاره ولی روایت تفصیلی برای اون اصطلاح یا برای اون مفهوم مصادقی رو روشن میکنن. مثل اینکه مثلا وقتی که شما می‌خونید اِن نمایوری دالله و لیوزه برد کمارش منجر براتون سوالی پیش بیاد که اینجا اهل باید یعنی که یا مسادقش چه کسانی خب یکی از غرشه که ما میتونیم به مسادق یک مفهومی در قرآن درسیم استفاده از روانیات تفسیمی همون چهار نمیشه؟ ها؟ چی؟ همون چهاروی نمیشه؟ این؟ تقییر اطلاقات قرآنی؟ مم. نه، اگر ما برای این مثال بزنیم شما مطلقی میشید که این متفاوت تذکیره یعنی نیست حده که ما یک گسرات می کنیم اون قانونی کجا بروزنیم البته حالا چیزای دیگه هم میشه گفتا مثلا تفصیل قصص اینجا میتونیم بگیم مثلا تفصیل سرگذشت های معاد یعنی میدم توی یک خب شاید اگر ما باز فکر بکنیم بتونیم به این چیز اضافه بکنیم یا بتونیم بعض از اینا رو در هم ادعا بکنیم اینا حالا مهم نیست که هشت بشه هفت یا هشت بشه نه. اینا خیلی مهم نیست مهم اینه که روایات تفسیری کار زیادی داره کارکرد زیادی داره من بعض از, از این کارکرت های رمایت تفسیری رو با مثال برایتون توضیح بدم یک متن دیگه ای هم اینجا برای شما میگم. ببینید حدیث تفسیری یا به طور رو حدیث گزارش ول وفعل گزارش قولی فیل بصلاً گزارش قولی پیامبر. خب حدیث یک بخشش قولیه حدیث قولی یه بخشی از حدیثم حدیث قولیه سلویتی در الجامور کبیر اومد روایدات پیامبر رو دو دسته تقسیم کرد دو بخش کرد یک اقوال نبی دو افعال رو دهد. چنانکه اطلاع دارید تو داری خدیثم براتون رفتید. حدیثم با این مولی حدیث تفسیری هم چی؟ آیا حدیث تفسیری عبارت از حدیثیه که مثلا پیانبر اسلام یک آیهی رو بخونه و بگه ای مسلمانان این آیه منشینه. ای مسلمانان، مثلا من برای این آیه این کارو می کنم. یعنی آیا ما به این میگیم حدیث تفسیری؟ شک نیست مصداق روشن و صریح حدیث تفسیری اینه که یک امامی، یک پیغمبری بگه که درباره این آیه منظور خدایینه این باشه که ما شک نداریم این عادی ساعتیه کافی گاهی اوقات از پی‌عملی یا ااینه معنای یک آیه رو سوال می‌کنه چنانکه مثلا الو <تصفح> ببین شما چارمین زنگ نزدید من هم دوباره اومدم سر کناس. الان الان تو ساعت 6 سر کلاس خدا آمادش شد. یه نیست که یکی از مسادیق حدیث تفسیری، یکی از مسائلی مصارعیه، سریعه. حدیث تفسیری گویی که از امام کعبه پیامبر رجوعی آیی یه سوالی بکنند. مثلا از پیغمبر سوال کردن که استطاعت چیست؟ ولله الله علیه تک جلویده، منستقاه، علایه سبیلا استطاعت چیست؟ حضرت فرمونم از زادو و راهده یعنی استطاعت یکی به زاده زاد یعنی سرمایه. توشه یکی هم یعنی مرد کرد نمیتونید با یه بره خودشون به خانه خدا برسونه اینا حدیث تفسیریه اما آیا حدیث تفسیری فقط اینه من اینجا می‌خوام ذهن شما رو متوجه یک حقیقتی بکنم و آن که خیلی اوقات هست که فیغنبر یا امام یک مطلب دینی میگه. یک مطلب دینی می‌گه اما اشاره نمی‌کنه که این مطلبی توضیح این آیه هست اگر ازش سوال بکنی میگه این معروب طبیه است ولی اگر که از اصطاع نکنی، ابتدا به ساکن داره تعلیمات خودش رو میگه مثلا راجب نماز، راجب زکات راجب جهاد، راجب حتی فضائل اخلاقی، مسائل اعتقادی دانشمندان در جوامع حدیثی اومدن احادیث نماز رو توربندی کردن، تدیم کردن اسم هرسان کتاب الصلاه خب مثلا فرض کنید در کتاب الصلاة صحیح بخاری ممکن 500 تا حدیث باشه در کتاب الصلاة کافی گدینی ممکن مثلا 400 تا حدیث باشه آیا این 400 تا حدیث اشاره شده که این حدیث مربوط به این آیه است این حدیث مربوط به این آیه است هرگز علکس ولی ما امروز میتونیم یه ادعایی بکنیم چه ادعایی بگیم که روایات کتاب و صلا در واقع تفسیر عقلی و صلات قرانی لازمه یعنی خدای تبارک و تعالی در قرآن میگه عقل و صلات مثلی که شما سوال کنید خب عقلی مصطلح، نماز شکر باید اقامه کنیم، نماز رو در شب روز چند بار اقامه کنید نمیدونم، چرکت بخونیم، با چی شروع بکنید به چی تمومش بکنیم، وقتی رابط، فرمایت که خوب و تشکریت را شروع کنیم، با سلام و تمام بکنید بینشم لا سلام تا الا بفاده نماز جز بفاتر کتاب نیست اینا در حقیقت تفسیر آیات قرآنه علیتشین که تو بعض از آیات قرآن اشاره شده که باید در نماز قرآن خورده بشه یا در نماز باید قرآن شدیده بشه اینجایی که میفرماید قم لیل الا نصف و قبل حسیل و اوزت علیه وردت للقرآن تردیلا پیغمبر تو نافله های شمانه شمان قرآن میکنه یا مثلا وقتی که میفرماید که فیضا قرآنو فستر اولا و, و امس تو پیغمبر میفرماید امام جماعت که نماس بقیه گوش گوش کنن این استماع استماع یا معمود قرآن معمول خوشت سر امام جمعهده به خلی هر استماعی واجب شرعی نیست ولی استماع مهموم نسبت به امام واجب شرعیه فعیض آقور علو برامون و انزتون میخوام بگم یه مقداری دیده تون رو وسیل کنید نسبت به پدیده روایات تفسیری مخصوصا توی احکام و متوجه میشید که کل روایات کتاب و صلات میشه تفسیر چی؟ اقیم و سلات. کل روایات کتاب و زکات میشه چی؟ تفسیر آت و, تفسیر آت و, تفسیر آت و کل روایات کتاب و میشه تفسیر این آید. و عطم منحجه و من عمرت هم به بیدا حج و رو برای خدا به آمه کنید به پاو داری مثلا دیگه خب این مطلب آیا مستنداتی داره یا نداره یا من از خودم دره چون یا مطلب مستنداتی داره یا چی یک حرف زموی مجید مارد نه خوشبختانه مثلی که هم در کلاس ها حرف زموی نظر، چند تا مستنب میخوام براتون بیدن یک امام بابر علیه السلام در کتاب کافی میفرماید که امام بابر علیه السلام میفرماید که قضا حد دست و کن بشتنی علم فسعلومی این ان کتاب اندام در هر زمینه‌ای با شما حرف زدن بپرسید این حرف شما مربوط به کدام آیه قرآن بپرسید ریشه این حرف شما در کتاب خدا چی یعنی ائمه این اعتماد نفس داشتن که زمانی که صحبتی کردند حالا فقه باشه عقاید باشه اخلاق باشه وقت حرف زدن خودشون در واقع به شایردانشون این رویه رو دادن که من که با شما حرف زندم، سوال کنید آقا این حرف شما ربطش به قرآنی به کجا قرآن داره؟ و واقعا پاسخ می یعنی اگر کسی می این فرمایش شما نازر به کدام آیست، آیهش رو می گفتن پیامبر اسلام، صلاب آقا علیه والی و جسم درست فرندن سالو و کمارعی و سلدی ولو بخص بخص که بخص بخص عقیب و, بحث و شما نگاه من چطوری نماز بکنم سلد و کمارعی و همطور که من میگیدید من نماز بکنم شما من رو این میشه تفسیر عملی. حالا یه تفسیر تفسیر تفصیل قولیه، پیتف این وقت تفصیل تفصیل عملیه، می‌فرمان سلو جما رای تومنی بسنگی، و, و نماز پیامبر اسلام می‌شه تفسیر عملیه حبیل و صلاة، مثلا ما می‌کنه کتاب صلاة ازش درد بیاد. باز پیامبر اسلام فرموندن خضور انی مناسک اکم، حالا بحث حج می‌خواییم ببینیم عطمال حج و عمول عطمال‌الله رو رو شونتون بیارم خضوعنی در کار من بیارید و هر کاری من می‌کنم، شما من داروشون خضوعنی از من ما هم گفتن، بعد چشم در هجت رو بده و ست باقی آن بعد مثلا یه جایی رفتن منطایم شدن یه جایی رفتن تو مکه مثلا در لگاه احرام حرفایی زدن بنوان ذکر بعد وارد مکه شدن، تواف جا بودن نمازش رو خوندن، سعی صفاق و مرده بعدش ترق یا تقسیم بعد از عرفاتش، مشعرش، مناش حالا در بارانم گاهی یه چیزی راجع به عرفات مشعر و مناش هست مثلا فعیضا قفز من عرفات فعز کنون دا در مشهر را ولی در که نخفته دیگه از که تو که کی در عرفات وقوف کنون این رسول الله که وقوف واجب رو در عرفات اعلان کردن که از ظهر روز نوم زلحی چه؟ اعلان اول مغرب نماز مبرمه هم می توانید تو عرفات بخونید باید را به سمجه مشقه را درام فعضا و فس کنید عرفاته فذکرو داها در مشقه که نمیشه مشقه را حالا وقوفش رسول الله شب را تا طلوع صبح در مشقه درام بیمانی و طلوع صبح وقتی که نما از آن روز دادن نماز میکنیم حرکت به سوی منا بعد درباره باره منا هم قرآن اونگه که وزکرالله ایام معدودات فمن تعجل في يومين و من اینه فلا اسم علیه و من تعخر فلا اسم عليه به من این توا و یا بعد فرموندن که کسانی که عجلی دارن دو روز در منا باشن کسانی که عجلی ندارن تا روز دواست سه روز در تمام اینا رو بر اسلام طبیل میکنه با اینکه در قرآن کردیم خیلی اصلا خیلی مختصر و مجمل دربارش صحبته پس اگر ما یه مقداری دید رو نسبت به روایت تفسیری وسیع کنیم متوجه میشین روایت تفسیری فقط به حدیثی نمیگن که مسرح باشه مسرح باشه که معنای این آیه اینه خب بله اینم روایت تفسیریه ولی از, از خیلی از روایت مسرح نیست که درباره این آیه این عمل کنید یا در این آیه یه بخشی از روایت تفس... تفسیری تو صورت روایت شما رابطه شو با آیه میبیدید چون سوال کردن که معنی این آیه چیه یا خود امام فرمودن که در این آیه منظور خدا اینه اینا یه بشری از روایات تفسیریه ولی باور کنید اگر ما بخویم آمار بگیریم شاید 20 تا 30 درصد روایت تفسیری عبارت از روایتیه که در اون معصوم اشاره می که خداوند در این آیه اینو میخواد بگه شاید 70 درصد روایت تفسیری مصرحنیم ولی مربوطه یعنی آدم میتونه احساس بکنه که این در اقتباط با کدام آیه از آیات قرآن کردیم لازم بود من این توضیح رو بدم که امردالی دیدتون رو ما فسیل کنید نسبت به حوزه ی تفسیری مخصوصا روایت تفسیری تو حوزه ی که ریشه ی کتاب های حدیثی ما رو ایجاد می‌کنه کتاب السلاح، کتاب زکات، کتاب اول کتاب الحج الا ماشاءالله عبوام فقیل آن بعد از این موضوع حالا میمیم یه اقدر رو اینا صحبت میکنیم که الان نقش حدیث در مسیر تفسیر قرآن رو ما تو هفش محور میتونیم در ذر و برای حق کدومم یک مثال بزنیم مثلا توضیح لغات خب ببینیم اولا بعضی از شما این کتاب رو من رو دیدید، نه دید. این دیدید بایدید که بعضیاتون در یک ارتباط این کتاب من رو دیدید در این کتاب ما یک فصلی داریم فصل تشتون بله، فصل هشتم. گونه شناسیه طبیینه واجگان دینی در روایات معصومان یعنی یک بخش از روایات معصومان صادر شده که یک سری واجه های دینی رو برای ما تبیین بکنه برای ما معنا بکنه چه روایات رسول الله چه روایات ائمه اطهار علیهم السلام خب تازه زمانی که شما این رو مطالعه کنید یعنی این فصل رو مطالعه کنید بازه متوجه میشید که معصومان علیه السلام به چند روش نه به یک روش معمولاً وقتی که ما یک لغت میبینیم به یاد کتابهای لغتی میفتیم خب درست هم هست آدم برای معنای لغت با در ریشه لغت توجه کنه و احتمالاً به کتابهای لغتی سر بزنه این روش درستیه برای وقتی که ما تو روایات معصومان قرم میکنیم، کنیم ببینیم اینا به چند طریق به چند طریق تازه لغات رو توزیدیدن خود روش توزید لغات پیغمبر یا ائمه متنفه گایی ائمه در معنای لغات از همان وضع معنای قبائل عرب استفاده می می‌گفتن در زبان عربی این لغت به این معنیه گاهی برای معنا کردن یک لغت از سیاق آیه استفاده می‌کردن یعنی ترجمه دادن معنای یک لغت رو تحت تأثیر نظام جمله توضیح بدن خود اهمه روش آیه متنوعه داشتن گاهی می میگفتن که این لغت مجاز معنای حقیقی نداره توی این آیه معنای مجازیش مراده. بنابراین اگر همین رو بخواید خوب متوجه بشید لازمه‌ش اینه که این فصل و مقاله رو بخونید. من برای اثر محمد خاوندن نبودنه از عریزه چند تا از روایاتی که که این حوزه میتونه معنای بعض از لغات رو برای شما روشن بکنه تو براتون میگه مثلا ما در قرآن کریم داریم که خداوند نسبت به ابلیس و تخلف ابلیس می‌گه آره یا ابلیسو مامنه اکه انتسو در دماغ خلقتو به یدهیه یدهیه خدا تو تو دست؟ چون میگه بله یعنی آهو چی شد که عبا کنی از موجود که با دو دست خودم خرمش کردن که عبا کردی از اینکه که سجد میکنی محمد مسلم از امام واقع سانو کنه مراد از یه چی؟ که خدا دارای دو تو دسته میفرماید یه در کلام عرب در معنای قوت و نعمت استعمال شده است تو خود قرآن هم استعمال شده مثلا در قرآن میگه بسکر عبدالا داود دل عیده داود زل عید بود خب اینجا یعنی صاحب قدرت و مکنه برای که همه آدم که دست رای جور دارن اختصاص به داود نداره یا در خود قرآن میفرماید بسماه بناینا ها به عیده که این عید همون یده و این نال ارز کنم خدمتون در احادیث پیامبر میفرماید اذا قوم اینو هو یا صدون یا صدون میفرماید یعنی چی یعنی چی پیامبر از صدود فی العربیت از یکی از معانی صد و صدود در زبان عرب خندیدن و مسخره کردن ازاقا و کمیرون و یسدون یعنی قومت رو مسخره میکردن مثلا پیغمبر رو یا پیان رو مسخره میکردن سمت سمت من دو تا حدیث دیدم از دو تا امام در معنای سمد دو تا حدیث از دو تا امام در معنای یک لفت معنای سمت چی؟ معنای سمد چیه؟ یعنی حتی ها بخوام بگن روایت اعنه حتی در معنای یک لفظ گاهی و تنوع داره حالا دقت خودی؟ از امام باغل سوال کردن معنای سمت چیست؟ از امام باغل سوال کردن معنای سمت چیست؟ می فرماید از سید المسمود علیه فلقگیر و کسیر سمت به معنای مسمود مسمود یعنی مراجع کسی که مردم در کارهای ریز تا درشت خودشون به اون مراجع و به اون پناه میاره. از سید المسمود اون آقایی که و مردم در کارهای ریز و درشتشون به او مراجعه کنن یک معنا، که این معنا، معنای لغویه معنای لغویه سمد اینه که کسی که همه بهش مراجعه میکنه. کنه یک انقدر غنیه، اینقدر با بولو برای بعضی ها میدن یعنی تو پر یعنی هیچ خلقی نداره، هیچ نقص نداره خب وقتی کسی هیچ خلق و نقص نداشته باشه میشه بهه برطرف کردن نقصها و هوایج دیگران از سید المسمود و علیه فلقلیه و کسی این یه معنی برای کلمه سمد از امام داره خب. حالا از امام و سوال سؤال میکنن که سمد یعنی چی؟ امام یه جواب دیگه میده میفرماید فرمو ان الله سبحانه قد فسر خود خدا صمد رو تفسیر کرده کجا فقالا الله احد الله الصمد ثم سم فسر فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له همی که خدا میفرماید فرماید لن یدد و لن یدد و لن یکن لوک یعنی سه مطلب رو خدا از خودش نفی کرده یکی اینکه که زایده نشده دوی که کسی از او زایده نمی شود سه که همتا ندارد اینا همون محلی سمده یعنی حقیقت سمدیت خدا به اینه که نه نیازه به بچه داره نه نیازه نخودش از بچ کسی زایده شده یعنی نیازمند کسی بوده نه نیازه به همسر و همتا دارد یه حقیقت سمدیت الائیه فرق معنای امام حسین با امام باقر چیه؟ امام باقر بر پایی لغت سمد و معنا کرد امام حسین بر پایی سیاق و زنینه آیه سمد و معنا و این دو روش این دو روش رو بکنیم دره میخوام میگم تو خود توضیح لغات ما روش های متنوعی رو میگینیم در بایات معصومین حتی گاهی در معنای یک کنیم هردوش هم قابل دفاعه هردوش هم بعدها شده مدل تبیینی مثلا راقب اسفحانی در کتاب مفردار گایی معنای لغتیه، آیه رو میگه گایی معنای لغتیه، کلمه رو میگه گایی معنای لغت رو در سیاق و در زن جمله میگه. بعد حالا جالبه، وقتی که شما این مقاله رو بخونید، یعنی فصلش رو بخونید، شاهد یک سری اتکارات میخواهید. ابتکارات عیمه خواهید بود یعنی مثلا ما گفتیم معنای توصیعی گاهی عیمه با روایتی که درباره یک لغت میگن به معنای لغت وسعت میدن وسعت میدن یعنی در روایات معصومین گاه یک سری ابتکارات مهم می مثلا معنای یک لغتی رو توسعه میدن گاهی معنی یک لغتی رو تنگ میکنن یعنی می تضییق معنی یا میگن توسعه معنی فرض بفرمایید در شرایطی که تا قبل از این حدیثی که میخوام براتون بگم باخره به معنای امساک مادی بوده به خیلی کسی که پول در راه خدا خرش نمیکن بخ. آقا معنی بخ که یک کسی که مالش رو میچسله و در راه خدا تلفاله می‌کنه، بخیشه. خب. امام باقر یا بر حدیثش هست می‌فرمایید یکی از مصادیق بخیل، یکی از معانی بخیل، کسی که از فرستادن صلوات بر من بخشه. برزه. یعنی یه توسعه میدن به معنای باخیل. به طور که از حوزه مادی وارد حوزه معنوی هم میشه یکی از مسادقه بخلین میشه چون در اسلام مثلا بنی زویر کسانی بودند که بر پیغمبر سروات نمیفرستدن یا بعضی سروات ابتر میفرستدن نفتن اللهم صلی محمد آل محمدشون مینداختن در حالی که این گونه سلوات رو میگن یعنی بخلشون در حدی بود که آل محمد رو بندازن از ادامه سلوات مثلا ما اینجا یه تعدادی از بیانه ها رو گفتیم بیان توصیفی، بیان توصیعی، بیان تمثیلی، بیان قایی، بیان تصویری مثلا این بیان قائی بیان قائی یعنی چی؟ این صد درصد جز ابتکارات عیم است یعنی یک لغتی را به نتیجهش معنا کردن یک لغتی که برای یک مفهومی به رفته اینو به نتیجهش معنا کردن به این بیان قایی به امام باقر از امام باقر سوال که ملحج حج چیه؟ معنای حج چیه؟ می‌فرماید الحج و الفلاح الحج و الفلاح این معنای لغوی حجه معنای لغوی حج قصد کردنه قصد کاری را کردنه مثلا میگم میگم که من را قصد خانوی خدا می‌کنم این معنای لغویه اما نتیجه یه حج چیه مخصوان اگر حجتی خدا بپذیره ازیره نتیجه یه حج چیه رستگاری پیانبر فرمودن الحج المقبول فجزا اول جنه این این معنا کردن لفظ یا کردن دقایت این فقط تو کار علم است فقط دوباره علمه است امام، خب از امام صادق سوال میکنن مل عقله عقله چیه خب ایشون میگه عقله یه از اقال میاد یعنی بستن این که میشه معنی روحبی بگن اقل یعنی کنترل نفس از سقوط در شهوات. ای خوبه عقل یک عاملیه برای کنترل نفس از سوگود در شعباتی خیلی خوبه شاید این هم معنای اصطلاحی باشه بگرم مثلا عقل یعنی تمیز حق از باطن این شاید معنای اصطلاحی باشه این هم چی میان در معنای عقل نتیجه اصلی عقل با یعنی میگن العقل و در به رحم وکتوسه بر به جنان عقل اونه که باعث خدا پرستی بشه و عقل اونه که دست تو تو دست بهشت یعنی تو اگر وارد بهش شدی قابل بابهی مثل این کی, کی غیر از اهمه ای طوری عقل کرد یعنی تفسیر لغت به و نتیجه که ما اینجا گفتیم بیان آی بیان قاهی چون و اینه چون دیدشون که بوده ته ته ته ته ته استعمال یک لغتی و حقیقت یک لغتی رو میدیدن دیگه و گاهی لغت رو به اون آیت و نتیجهش معنا معلش چی بوده این چه عاملی باز شده که این طور تر بیان تفسیری و شرح دادن چون چون دیدشون وسیع است نسبت به ماهیت این کلمه و رسالتی که بر دوش این کلمه است یعنی خدای تبارک و تعالی قوه اراده رو در ما گذاشت که ما سر از بهش در بیاریم بقیهش الافیه ترجمه ياسینا می‌فرمایند وقتی ازش ایستغار میکنند که مره اقل اقل چیه میفرموند اقل اونه که باعث خدا پرستی بشه و بهشت رو نصیب تو بکنه عل... ا... کربته علمای اخ... اخلاق به این اقل میگن اقل احملی یادتون باشه بعدا در تقسیم بندی علمای اسلامی میگن ما یک اقل نظری داریم که رهاورد شناخته یک اقل عملی داریم که رهاوردش رغا، عمل به واجبات دینی اینجا منظور از عقل عقل عملیه گاهی به عقل عملی بعضی ها میگم حکمت عملی در مقابل حکمت رزه <تصفح> خب حالا باز یکی دوتا روایت از روایت تیانبرم دیگم وستعینو به صبر و صلوات. اینجا صبر یعنی چی؟ روزه روزه, روزه. اسلام حق داره که بگه سبر یعنی روزه وستعید و به و و انها و الا على خاشه همونطور که در آیه شریفه سوره توبه هست که میترد بگه العابدون سامحون الحامدونم برآمرونم این معروف برآمرونم این معروف سائحون سیاحت این تفسیر شده به روزه سائحون یعنی سائل یعنی یک گردش درونی یک گردش رفتاری، یک گردش معنوی این گردش درونی و رفتاری عبارت از روزه است و در این آیه شریفه آدم میگه که خدایا در کنار روزه و همد و ذکر و امر معروف رو نه از کرد گردشگری این چیه مناسبتش با کلمات این ورگ ورش چیه به روایات مراجع میکنه میره پیانبر اسلام سیاحت رو روزه مهنم کرد. درسته؟ الان هم صدایی ازال میاده هم؟ یه, یه روی باشه برای نماز. اول وقت بعد رو از رسید. بعد یک نشان باید اون قشبیه رو دادوه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اینهو خیر ناصر و موین و صلی اللہ علی و سیدنا محمد و آیت تارین توی این قسمت بودیم که نخش حدیث در مسیر تفسیر قرآن رو توضیح بدیم براتون که حالا خود این 7 بند داره و بند اولش که توضیح لوات بود ما یه مقداری در قبل از تماس مفصل توضیح دادم از این قسمت خارج میشیم با خوندن یک حدیث کوتاه ببینید در قران داریم وعد لهم مستطعتم من قفه حتی اقل یکی از مصادیق قوه در زمان پیامبر تیراندازی بوده که یکی از صحابیان میگوید از پیانبر شنیدم که بر فراز منبر این آیت الهی بخوان و فرمود همین همین همی آیه هم مستطعت همین قوه بود سلام نبید. و اینل قووه و ان الْقُوَّتَ الْرَمِيَ قُفَّت تیراندازی است یعنی پیامبر اسلام قوه معنا کردن به تیراندازی البته این معنا معنای انحساری نیست چون نوع سلاح های نظامی که میتونه واقعا موجب استحکام یک جامعه اسلامی در ارز کنم برابر دشمن رو بشه اینا از مصادیق قوه هست چون پوشش می‌فرماید و اعطی لهم مستطعات من قوه تن به الله و ادو فکم در زمان پیغمبر شاید مهمترین مستاق برای قوه طبق اون هایی که می‌کردن عبارت است تیراندازی باشه خب اما می رسیم به تبیین مجملات ببینید در احتباط با تبیین مجملات من معتقدم که کل فقه تبیین مجملات آیات و لحکامه کل فقه تبیین مجملات آیات و لحکامه به طور کلی یعنی اصلا این مثال موردی و اختصاصی نمیزنم اما اجازه بدید لاغن یکی از مجملات رو اینجا براتون تبیین بکنم و یک حدیثی از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم. برید قرآن کریم می‌فرماید که ان الصلاته کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یه حکم وقت داره. اینجا کتاب به معنی حکمه. ان الصلاته کانت علی المؤمنین کتاب کتاب به معنی حکمه. در خود قرآن فی ها کتبون غیمه یعنی فیها احکامون عادله پس معنی کتاب یکی از معانیش معنای کتاب چیه؟ حکمه کتاب موقود یعنی زماندار زماندار آقا اوقات نماز در شوال روز چیه؟ و مبناش چیه؟ بریم ما در قرآن کریم مثلا داریم که وزکر اسم عرب بکر بکرتن و اصیلا پروردگارت رو اول صبح یا اصیل اصیل رو میگن اصل و اصل و لیل ارز خدمتون وزکرو و من آنای لیل و اطراف النهار لعلکت ارزا ارز کنم اقم السلا طرف نهار و ظلفم من اللیل یا مثلا در قرآن میفرماید که که اقم السلاة لدلوک شمس الى قسق لیل و قرآن الفجر که گفتن نماز صبح این قرآن الفجره کان اموتا خدا این قرآن الفجره کان دوشون ببینید همین آیات وقت های نماز رو حدودی نشون میده ولی ما نیاز به یک مطلبی داریم اول وقت و آخر وقت من دو تو حدیث برای شما میخونم یکی حدیث امام صادق علیه السلام که میفرماید لکل سلاطن وقتان اولهما افزل ما. هر نمازی دو تا وقت داره یکی اول وقتشه که به تو اجازه میدن اون نماز رو اقامه کنن یکی آخر وقتشه یعنی سانیه های آخر وقتش دیدید بعضیا نمازشون نگه هم تو اون سانیه های آخر ثانیه آخر رو این دیگه نخونی قضا میشه لکل سلاطن وقتان اول هما افزل هما. البته اگر کسی اول وقت نماز بخونه بین دو وقت افضل وقت اوله نیست که شما الان موفق شدید رفتید انشاءالله اول مغرب رو به جا بردید خب؟ اف اولهما افضلوا ما خب این یک حدیث راجب به اوقات نماز که به ما هر نمازی دو تا وقت داره وقت اول و وقت آخر در یک حدیث دیگه امام صادق علیه السلام میفرماید جبرئیل برای هر نمازی دو بار نازل شد و جلو پیغمبر خوند و پیغمبر منتقل کرد به امتش یعنی برای اینکه خود رسول الله در جریان اول و انتهای چون شاید ما در کلاس‌های قبلی برای شما از یک اصطلاح نام بردیم وحی قرآنی و وحی بیانی یادتونه وحی قرآنی یعنی قرآنی که قرائت میشه وحی بیانی یعنی اون آموزه دینی که جبرئیل میاره جبرئیل بر قلب پیغمبر میندازه یا اصلا بیاد عملشو نمایش میده نمایش میده و پیغمبر میفهمه اوقات یعنی این امام صادق میفرماید جبرئیل برای هر نماز دو بار نازل شد و پیغمبر رو در جریان وقت اول و وقت دوم یعنی وقت آخره هر نمازی قرار داد و پیغمبر منتقل کرد به مردم حالا یا زبانی منتقل کرده به مردم یا از کنم در اون زمانها نماز خونده رسول الله و مردم ها فهمیدن وقت اول چیه وقت آخر چیه به طوری که مثلا فرض کنید ظهر، وقت اولش زمانی که خورشید تو مرکز آسمان وسایه ها سفره بعد پیامبر اسلام یک چیزی هست میگن شاخص شاخص این شاخص به اندازه یک ذرا بوده میدونید زراع چقدره پنجاب و دو سانتی متره یعنی حدوداً نیم متر پیانبر اسلام در حیات مسجدشون یه شاخصی کوبیده بودن زمین و به مؤمنین میگفتند که از سایه صفر تا سایه شاخص به اندازش وقت اول نماز زهره بعد زمانی که سایه شاخص دراز میشد دراز میشد دو برابر میشد فرمولا وقت اول نماز اصره. یعنی حتی پیامبر برای تعیین اوقات نماز از این ادوات طبیعی مثل خورشید و سایه خورشید و شاخص که میکوفتن تو حیات ئشون استفاده میکرد. خواستم به شما بگم طبیعی مجملات، حالا به عمل یا به سخن پیامبر یا ما چونه در روایات فقهی آمده خب این کتاب آفاق تفسیر که کتاب بسیار عرضشمندیه ملاقای محمد علی مهدبی را و ما در جلسات وزشتر به مناصبت از این حرف زدیم و یک استفاده کردیم اینجا یک تیتری داره گونه های تفسیر پیامبر در اینقدر همینه دیگه نقش حدیث در مسیر تفسیر قرآن که من اینا رو نوشتم یه بخشم از اینجا استفاده کردم گونه های تفسیر پیامبر در گونه های تفسیر پیامبر خب تبیین مجمل گفته بعد مثلا تخصیص عام رو گفته مثلا حالا تخصیص عام قرآن می‌فرماید فرماید یوسیکم اللهو فی اولاد للزکر مثل حظ الأنثيين به قانون ارث این عامه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين خداوند درباره فرزندانتان سفارش میکنه سهم مذکر دو برابر مؤنث حالا اگر یه پسری حوس کرد باباشو بکشه زودتر به ارث برسه میشه. این آیه ساکته یعنی یک قاتل پسرم مشمول این آیه میشه. چون آمده. ولی پیامبر اسلام فرمودن لا ارسا قاتلن چیلوش گرفتن به این تخصیص عموم. لا ارسا لقاتلین. کسی حوص نکنه برای که زودتر به ارث برسه بابای خودشو بکشه <تصفيق> قاتل از ارث محرومه قاتل اول باید محاکمه بشه قصاص بشه یا تازه باید خونبه ها بده تا بعد ببینیم اصلا به نوبت ارثش میرسه یا نبیرسه اصلا یه آب پاکی رو ریختن رو دست قاتل، چونان که لا ارسل ده شد تخصیص عموم. نزدیکی به تخصیص عموم تقیید اطلاقات قرآنیه، تقلید اطلاقات قرآنیه. مثلا فرض کنید قرآن کریم می‌فرماید و سارقا و, و سارقات فقط او ایدیهما جزاء بما کسبا نکالم من الله. خود دست زن و مرد عرص شود سارغ رو ببرید بسیار خوب حالا می ببریم این دست رو از کجا ببریم از اینجا ببریم که بهش میگن منکب از اینجا ببریم که بهش میگن مرفق از اینجا ببریم که بهش میگن موج، از کجا ببریم بر اساس حدیث امام جواد حالا حدیث امام جواد علیه السلام یکی از مستندات این موضوعه مستندات دیگرم دارد آنچه که در حد سرقت سارق برای دست جایزه چهار انگشته یعنی ید تقیی مقید میشه قید میخوره به چهار انگشت بعد میگن این در مجلس معمون عباسی بود که یک دوزدی رو میارن داستانش معروفه اطمالا شنیدید یک دوزدی رو میارن که این میخوان حد سرقت رو اجرا بکنن یکیسی میگه باید از شانهش ببوریم یکی میگه از ببریم ببوریم یکی میگه از مچش ببوریم بعد امام جواد میخرماید که از چهار انگوشش رو قطع کنید بعد بعضیا خیلی عجیب بود برشون میگن چرا؟ چطوری؟ مبنات چیه؟ میفرماید مبنای من قرآنه ببینید ازاحت دست کن بشه این فسالونی ان کتاب الله شما ریشش از قرآن بخواید من براتون میگن میفرماید خداوند در سوره جن میفرماید و انم مساجدل الله در این آیه مساجد یعنی موازه و سجود موازه و سجود موازه و سجود مال خداست خب دو تا از موازه سجود کف دستانه یه همین دوزن فرض میخواد نماز بخونه ما به موازه و سجودش نباید اخلال وارد کنیم اگر چهار تا انگوشتشو بزنید اخلال به موازه و سجودش وارد میکشه همه میپسندن عجب مبنای قرآنی خوبی یعنی معصوم که هم مسلط به قرآنه هم مسلط به روایاتی که از جدشون داشتن اینا میتونستن واقعا تبینه های درستی از آیات داشته باشن و این تبییناتشون های اکثرا به ما خوشبختانه رسیده در ارتباط با تفصیل قصص انبیا و تفسیل های معاد من حالا دوست دارم که یک جمله ای رو راجع به علامه طباطبایی برای شما بگم مرحوم ما... البته ما هفته آینده من یه تیتری دارم که یادم باشید این تیتر رو براتون هفته آینده ان خواهم بود که جایگاه و نقش حدیث در تفسیر میزان. حالا چرا ما بعد از که میگیم نقش حدیث در مسیر تفسیر قرآن یک تیتر داریم جایگاه و نقش حدیث در تفسیر میزان به طور خاص این علت داره علتشینی که مرحوم علامه تبا معتقد بود که حدیث قرآن در ارائه مفاهیم خودش حتی نیازی به سنت و حدیث ندارد این اصلا تئوری علامه تبا تباییه. که میگه قرآن در بیان مفاهیم خودش روشن نور مبین مغلق نیست حتی نیاز به حدیث و سنت ندارد خب این اصلا تئوری علامه تبا تباییه علامه تبا تبایی سجا دستشو میبره بالا یه به استثنای سه دسته از آیات تفصیل قصص اندیا تفصیل سرگزشت های معاد یا مسائل معاد آنچه که در معاد به سر انسانیات شش کس غیر از پیغمبر نمیتونه از معاد خبرده این از مقوله خیبه و تبیین آیات و احکام تبیین آیات و احکام تبیین آیات و احکام در شأن و در شایستگی مفسران معمولی نیست مفسران معمولی نمیتونن بگن وقت نماز اینه کسی میتونه بگه وقت نماز اینه خب تلفن منه به اون داره شوئه خب پدرم حالا دیگه اونم در به من بدید من درس امروز رو بالاخره در همینجا به پایان می‌بریم. بله، با از یه کنید. چی اینا تو سنته. ببینید بر اساس آیه و سارغ و سارغت و فخته و اگر یک کسی یه مسخالی یه جزئی بردار ما به دستش ولی در سرنت تخصیص میخوره که مال مسروغه از چقدر کمتر نباشه یک تخصیص میخوره که مثلا مال مسروغه در شرایط استرالی نباشه یعنی موج به طرف مشرفی به مرگ سیقت نکرده باشه ببینید اینا تو روایاته اینا تو روایاته تمام این شرایطش در روایات وارد شده و الله اللہ علیه سیدنا محمد و الله امتاد